من را می با من میای یه دیرتر میری نه میام باهات میای دفتر دیگه؟ نه میرسونم بعد می میرم فروشگاه خیلی کار دارم. اصلا ممکن میام دفتر. امروز از یه شرکت تبلیغاتی میان. منو دیدن کارمونم دنبال کردن. جدی؟ آره خیلی هم خوششون اومد. چه خوب. امروز میام؟ آره ولی کاش تو هم باشی من دقیقا نمیدونم بعد چی کار کنم. آش. اصلا امروز که خیلی گرفتارم. اول باید برم سراغ یکی از طلبکارای بابا. چک داره ازش برم که یو برگشت نزنه. قبلن زده اگه دوباره بخواد برگشت بزنه خیلی بر میشه. کارخونهام که حتما حتماً باید برم. می‌خوای من قراره بندازم یه روز دیگه؟ نه نه نه نه. این کار هر چی زودتر انجام بشه به نفع منه. من سعی من میکنم خودم برسم. اگه نیومدم مطمئنم که تو از پسش برمیه جلسه رو باشون بزور ولی هیچ چیز قطعی نکن. دیر وقتم که شده میام رو پیشنهادشون کار با با با زودتر حالش خوب شد دقل بتونه کم کارخونه رو بچرخونه اینطوری هم خودش کلاف از خونه هم تو خیلی تحت فشاری و نگرانه فعلا که چاره ای نیست با رونا دیر هم شده بجوم بزدتر بریم متظرم باش بارو معلمیم خودت برو بگیر. پیش خودت باش نیازی بهش ندارم نمیشه که همش دل با ماشین رونا میری پسش بدون مال خودت برو بگیر مال خودم اگه مال خودم بود چرا پس از من گرفتیش ممنون نمیخوام دیدی من دارم میرم کارخونه امیدوار شدی اره فکر کردی من شرکت خودم رو ول میکنم برمیگردم پیش بابا با سه هستی هم هست داری ماشین رو پس هم میدی من رفتنم به کارخونه بابا موقتیه تا یکم حالش بهتر بشه و بتونه برگرده و خودش بتونه کاراشو انجامه کار اصلی من شرکت خودمه که خیلی هم خوب داره پیش میان بذاریم من میام خوبه فقط ساعتش رو به من خبر بید باشه بفت سلام رونا یه پول گذاشتین تو این شرکت هر روز پامشین میین اینجا کار دارم که اومدم بی خود چون مثلا حق ندارین هنقدر مزاهم بشین مزاحم چی میگم کار دارم من رعایت شراکت و سرمایه گذارتون رو نمی کنم. اون پرونده شکایت هنوز توی کلانتری هست مجبورم نکنین دوباره جریان به نزمش میدونید که دارین بر خلاف تعاواداتون رفتار میکنید گفتم دیگه نمیخوام ببینم اتون دست از سرم بردارین یه لحظه آروم باش ببین چی میخوام بگم اصلا نمیخوام بشنوم. برید دیگه من به خاطر خودم نایومدم موضوع مهمیه تلفن تو که جواب نمیدی جلوی رامینو بقیه هم نمیخواستم حرف بزن راجبه آراش چی شده که نمیشه حرف بزن. یه دقیقه تو ماشینم هم سوار. من با شما جایی نمیام. اگه حرفی از همجا اونجا بزن. آرش تو درده سر افتاده. چند تا پلیستون اومدن این مزخرفاتو میگی منو اسفاد به اون بعد بین کن. من میدونم که یه گرفتاری بزرگ پیش اومده. چه گرفتاری؟ خب یه همچین چیزی که از خودم نمی بافن. خیلی خوب شما راست بگین حق با شماست. چه گرفتاری؟ نمیتونم بگم. پس حرف بیخود نزن. چشم گوش بسته بشه اعتماد نکن آدم قابل اعتمادی نیست اتفاقی افتاده؟ نه. رنگت تو خیلی پریدا. چیزی نیست. آخه تلفنم جواب ندادین. کی بود؟ مشتری. بود جواب بدید. آخه شاکی بود، میخواست با مدیریت صحبت کنه. شاکی چرا؟ مثل که خونه تو گرگان انتخاب کردن، با خانوادهشون رفتن اونجا و دیدن عکسایی که توی اپود خیلی فرق داره با چیزی که هست. خونه رو اشتباه رفتن؟ نه، آدرس رو درست رفتن. ولی صابخونه باسه بازار گرمیه سریع اکسای دیگه جای خونه خودش گذاشته سری خونه دیگه براشون پیدا کنین اون خونه متخلفم هم از تو اب هست کن همه کار کردیم ولی مشتهی راضی نمیشه میگه خسارت میخواد هم کرده اگر خسارت نگیره شکایت میکنه. همین ما مونده دیگه شما نگران نباشی من رازیشون میکنم این مشکل قبلا هم پیش اومده بازم پیش میاد نمی خاین کسی رو بذارین مسئول شکایات اینجوری واسه جلوه شرکت هم فکر می‌کنم خیلی بهتر باشه برا آره بد نیست. برا من حرف می‌زنه. خوش، هرجور صلاح میده. اتفاقی افتاده شما باید بگی چی منظورتون نمی فهمم قرار نبود ببینیم چه اتفاقی برای آرش افتاده به منم بگی باشه آقا ساله چیزی نگی ولی من میدونم آرش گرفتار شده پولیسام دنبالشه کی حرفار به شما زده کامیار گفت شما حرف کامیار قبول میکنه آرش کلاً عوض شده اگه این تغییر رفتارش نبود که من یه لحظه حرف اونو قبول نمی لا بود این پولی هم که از حساب شرکت برداشته برای همین گرفتارش بود. نگران نباشین درست میشه ان آقا صالح من مطمئنم شما می‌دونین چه اتفاقی افتاده. اگه همین الان نگی میرم سراغ مادر آرش. طاهر خانوم مریض بوده این روزام حال و روز خوشی نداره. درست نیست نگرانش کنی. شما بگین حقیقت چی؟ kaldı sen bir şeyce همونم جواب بدم آرام بیم بله ساله آرش معلمت کجای ده دفعه برسن اینجا دار حالا قاسم بد شده بردم بد شد؟ این روز بردم اش دیزن ساما آقا تا برای چی این کردی؟ من نکردم شادی قرار گذاشته بودش من نمیدونستم گفت میخوام برم دیدنی یه نفر نمی نمیتونستم نبرمش برمش مرم حالش بهتره اتفاق بعدی که نیو حالش به هم خورد بد شد گفتم برمت بیمارستان گفتون رایترم و بودمش خونم الان بهتره بهتر نسه یهو نه رفیقش دکتوره زنگ زدیم گفت میاد سرش تو چی کارم داشتی رونا اومده بودنجا رونا چیکار داشت چی کار داشت؟ یه فهمیده نگرام. یعنی چی چیزه فهمیده؟ همین کامیار انگار یه چیزایی بهش گفته. کامیار؟ اون از کجا فهمیده؟ نمی‌شه دیگه من نمیدونم ولی خیلی عصبی رو به هم رفتار کرد. کامیار بهش گفته که تو درد سر افتادی. اومده بود اونجا که حقیقتو بفهمه. تو که حرفی بهش نزدی نه؟ نه نه نه, نه. من چیزی بهش فقط من با تو حرف میزنه به من چه اینکه خبرشو داش میده. گفت این نگر میده پیش مادرت همه چی برش تعریف میکنه آرش به نظرم هم خودت دوره همه چی بگو چی بگم به ساله بگم قتل کردن من نیه میدونم ولی میترسن کامیار برای درد سر درست کن کامیار لنده چرا دست سر من بره نمیداره ساله من برم دکتر قاسم اومده باشه حالا چیکار کنم که بکنیم رضا برد کجا فرمیده دوام کنه چه ندونه برگردم بیچاره به زنگ زد اول دفعه بکش امیخته دیگر دو بده هم نامنظم میزنه بهتر بریم بیمارستان یه نوار بگیری من بیمارستان نمیرم یعنی چی؟ اگه کاری ازت بر همین همینجا انجام بده اگر نه من بیمارستان برون نیست تقصیر آرشه که به حرفت گوشتن همون موقع باید میورده بیمارستان خب من که نمیتونستم به زور ببرمشون و اگه برم بیمارستان حالم بدتر میشه خیلق همینجا بمون تا خوب لا لاه لا. چه اینقدر حرف گوش نمی کنی من اینجوری واقعا یه دنده ای مثل همیشه اگر بعدم بدتر شدی نگی جلال برام کاری نکرد نمیگم بس حداقل دقیقا گوش کن ببین چی میگم به سریس و فشار برات سمه باید استراحت کنی به چیزی هم فکر نکن باش نکن همش هم. باشه آشه چرا رفتی سراغ اون پسره ؟ خواستم باش حرف بزنم. آخ تو چی کاری که بره با اون حرف بزنی؟ بعد زنگ زدی به پلیس؟ میخواستم بفهمم چرا میخواست از من انتقام بگیره؟ حالا مثلا فهمیدی؟ یه چیزایی گفت که من باور نکردم. من که از کاری تو سر در نمیرم. نبد برم؟ نه؟ یه قضایی درست کن بده قاسم بخوره هم بخور رنگ گروت بریده نه من چیزی نیست یه فشارتو بگیرم نه نه خوبم چیزی نیست ممنون باشه قاسم از اون قرصی که بدادم بد هشت چیز یه بار یه دونه بخور باشه من غروب برمیگردم انشالله تا اون موقعم زنده ای تو هستی من برگردم؟ بله حتما بده کی بود؟ شما شو نداشتین شد تو قرار بود بلی مسافرت کی شد تا واسم جان مونده. متأسفم، من نیستم. حتماً تلاش پس درست کنم. امیدوارم ببینی. بلکه راجبه برنامهتون شنیدم فکر کردم مثلا سایت های خونه یابیه ولی وقتی نصبش کردم و کامل بررسیش کردم دیدم خیلی متفاوته واقعا بهتون تبریک میگم ممنون وقت شما رو نمیگیرم میرم سر اصل مطلب من تلفنی هم بهتون گفتم که ما این شرکت تبلیغاتی هستیم برای اپلیکیشن‌های موفق تبلیغات می‌گیریم بله گفتم قرار شد حضوری صحبت کنیم و ما شرایط کارو خدمتتون عرض کنم بفرمایید این لیشت شرکت که ما برایشون تبلیغات گرفتیم پنجه و سه تا شرکت ببخش ما چی شد وکیل خانوشاکری تماس گرفتن میگه وکیل گرفته من چی میگه میگه که به نفه قبل از اینکه دادگاه تشکیل بشه و موکلش توافق کنیم چون قاضی همون جلسه اول حکم میده که به طور موقت جلو کار ما رو بگیرن همون جلسه اول بله چه هرند میگه این از کجا میدونه؟ نمیدونم ولی نمی اگه یه درست راست بگن چی به نظرم بهتر شما باشون یه صحبتی بکنیم شاید با یه مبلغ راضی بشن وقتی رفته شکایت کرده یعنی پ که اومدن رو این صحبت میکن ببین برفشه رفته وکیل گرفته سلام رامین جان کدوم <تصفح> موض کردم دیگه. خب، یه فرصت کوچیک به دهانش میاد. تو بونگا سامو شکارت ببین باز بخوای گهب کنی. من دیگه باز نتونستم فیلم بازی کنم همه چی رو فهمیده گفته که خونه هر برنگر دونم میره ببین کامیار من یه بچه دارم که خیلی هم دوستش دارم نمیخوام با یه ندونم کاری زندگی پاشه داشم ما حالا میریم بونگا قرار داد بله قرده توی بنگا میمونه تا توی کاری برما نهار شد خواهی بزنی زیرهش. نه میخوام یه نفر رو بر حد مرگ برام بتار سن. کی هست اینش مهم هست میخوام از شکایتی سر نظر کن شهر برام نه نگران نباش اسمش اسمش چیه فنقش شاکر ساینها. هر کامسای گیشود خواب بود. بر تو نیست کردم، برو بیارا نه. <تصفح> نه همه فکر و این پسر سامانه بروبن سومه من دکتر گفت آروم باشیم دیگه یه حرفایی میزنه که نمیدونم راسته دروغه من که هرچی فکر بیکنم هیچی از اون روزای آدم نمیاد چ... چی گفت؟ چی حرفایی که مال خیلی سال پیشه ولیدم شده شدم از کار کارو زندگی افتادی این چه حرفی آقا تو چرا قوهاش من می‌کنی از اون روزه تو بیمارستان که از ما خواستین خب من دیگه نتونستم از فکرتون بیرون بیام خب شما توی مدت خیلی هوای من داشتین خیلی بیشتر از مسافرکشی کشی به من پول دادین من به پول احتیاج داشتم من واسه بله کیه بابا دکتر خدا حرف کنه این مرد برادر من نیست ولی واقعا از برادر به من نزدیکتره حالا که اومد تو برو بابا این ای ای آجلال هستش من تنها نیستم باشه چشمها شما کاری داشتیم بهم زنگ بزنیم چشم خدا حافظ دهیستم با اجازتون خدا حافظ قاسم سلام, سلام روش دیگه من با عزتتون میرم دیگه شما تشریف آورده ممنون قربان خدا خدا سلام قاسم خوا سلام جلال و سر حال می بینم ماشاءالله خوش اومد به حرفم گوش کردی زنده بودید تا من برگردم چه بوی خوبی پیش توی خونه بهش درست کرده برطان بیارم نه میل ندار بی خود میل نداری باید بخوری ملیزی اگه زوره خب نمیخورم برنام خوسم چا نوش جونه نمیخوری؟ مریضی یا چیزی بخوری تو مهبه چه خوش مزده هست دست باقشم خوب باقام شانسه وردیم پسر اینجاست چیکار مخواستی بکن راست میگی قدر بیام پدر مادرش چیکار هست؟ چی چیکار هست؟ میگم شکلش چیه؟ آه فکر میکنم بیکاره فکر میکنی بیکار باشه چه بهت معرفیش کرده تو بیمارستان کمک کم کرد من آورد اینجا تو خونه خب پول مولی چیزی بهش معلومه کار و زندگیش راها کرده اینجا در خدمت منه یکی <تصفح> <تصفح> گفتی بیکاره خوب زندگی که داره جلال چرا تعبیل پلیسش ندادی؟ کیو آره شو بابا اون پسر سامان آ قرار بود که با لامت من آرش تلفن بزنه به پلیس ولی مثل اینکه وقتی حال من بد شده هو شده تلفن نزده اشتباه کردیم باید همون به پلیس قرار می دادی. چه تلفن؟ حالا پونه هست چند بار زنگ زده جوابشو نداد. جوابشو بده نگرانته خب حالم خوب نیست میترسم ناراحت بشه سلام بابا جان سلام قربونت برم حالت چطوره خوبم بابا جون چند بار بهت زنگ زدم جواب تلفن رو ندادی دلم شور افتاد نه نگران نباش رفته بودم آشپزخونه راستی حال اون نوه کوچولوم اصل چطوره خوبه عزیزم خوبه بکنم یکی دو روز دیگه بتونیم بیایم پیشتون. چرا اومدن عجله نکن بابا جان. به زاهر شرایط این بچه برای سفر کردن آماده شد اون وقت بیا. آخه بابا من ناراحت شما شما همش تنهایی. مهرانم انقدر برای قبل و بعد من مرخصی گرفته نمیتونه دو ساعت بیاد به شما سر بزن و برگرد. نه بابا جان با اموجلال ترف بزن. از من خود اموجلال سلام پونه جم. سلام اموجون. چقدر خوبه که شما پیش بابامی. می تو تناش نمیذارم من هستم من همیشه هستم اون پسرم که اینجا کار میکنه هست تو نگران نباش خدا خیرتون بده حسلم ببوز قربانت برم خدا حافظ جواب تلفونیشو بده اگه نگران میشه آخه ترسم بفرمه حالم خوش نیست نراحت بشه الو، راحت آره، چیکار کردی؟ به رونا گفتی؟ نه. ببین من نمی‌دونم این کام یا چی بهش گفته ولی خیلی نگران بود. من رو اصلاً نمی‌ذارم. به رونا حتی نمی هر حال دیگه شک نداره که یه اتفاقی افتاده. میره سراغ ها تا دیم ارتی که تو چی رفتی به رونا گفتی چی گفتن یه مزخرف هایی گفتی که نگران شده در چی گفتم مزخرف نبود چی بوده بیا ببینم اتبت میگم لازم نکرده بگو حضوری میگم فقط من برای چی باید بیام ها برای اینکه من میدونم چی کار کردی مدرکم بود چی کار کردم بیا ببینم اتبت میگم عجله نکن خدافز خدافز چی هستی تو؟ آروم باش. من میخوام کمکت بکنم. لازم نکرده. تو از هر راه کثیفی داری استفاده میکنی که رونا رو نسبت به من بدبین بکنی. هرکی کی ندونه من یکی که خبر دارم تو دنبال چی هستی؟ من می خوام با رونا زندگی کنم فقط همین. این دروغیه که داری به بقیه میگی. ولی من یکی که خبر دارم تو دنبال پود پدره رونا. تو مثلا نیستی؟ چرا پرت و پدا میگی؟ مظفر تو چی رفتی به رونا گفتی من میدونم تو توی بد مخمسه گیر افتادی. چه مخمسه ای؟ نمیخوام زیادت راچه بهش توضیح بدم درست بد کن مبینم چی میگی؟ مبین نمیخوام برای درده صد روز کنم اما اگه دست از سر بر نداری میدم این دست پولیس چرا ما زخراف میگیم من چیکار کردم که بخوام پولیس به کاری نکردی؟ چیکار م... کردم؟ خودت بهتر میدونی؟ چی رو میدونم؟ قتل پیشمانکاری کیه؟ تو یه قاتلی عوضی کیف کیفتو نیست؟ این عکس کی بهت داده خودم گرفتم تو نه؟ این عکس خوشگله توش بود قبی فقط یه رادر که کیف کیفتو پس بگیری ختا از نگی رونا به کش می رو پشت سرتم ننگار نکن. اگه این کارو کردی کیف رو به پس میدم. منتظم دیگه باد کاری نداره. برو بیرون اینگم ما رو بیرون؟ میکرده که به مرتضا رسته نمیدونم دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی آرش تا دیر نشده خودت برو همه چی رو بکن بلیط گرفته بودم برم اموز پرواز داشتم که این اتفاق برای واسم افتاد خب بس حتما حکمتی توش بودی که نری همین الان پشت برو پیشون پیر همه چی براش تعریف کن خودتو معرفی کن بنده خدا با این وضعیتی که هلان داره اگه همچین چیزی رو به فهمه پس میفته به من اعتماد کرده نمیتونه همچین چیزی رو کنه پس ماهی چی کار همونی که چند وقت دارم میگم باید یه کاری کنم که رونا از زندگی میره بیرون تو خودتی دو روزو مغازه سر نزدی اون تلفن من هم که جواب نمیدی قوط یه چیزی شده دیگه امرو قاسم رو دیدم قاسم؟ کجا؟ با شادی قرار داشتم زنی زده بود خواستم رو خبر کرد من نشسته بودم روی نیم رو دیدم بال سرم زاهر شد آخه شادی خانم چرا یه همچین کاری که چه میدارم میگفت میگفت قاسم میخواست حرفای منو بشنوه بدونه من برای چی ازش کی ندارم به پلیس زنگ نزد پلیس خبر کرده بود من اینجا نبودم. عجیبه که زنگ نزد عجیب که نفکر کنم واقعا مخوا صرفامو بشتن بهش گفتی که پسرشو تو نکشتی باورش نشد حالش حالشم خراب شد بردش بیمارستن به شادی گفتم زنگ میزن اون رو جانس حالش چطوره من چه میدنم خوی زنگ بزن حالش رو بپرسو دیوونه یا زنگ بزنم چی بگم یه من ک هم؟ خگیه و خدا نکرده اتفاقی افتاده باشه چی؟ به من چه شادی خبرش کرده خ زنگ بزن به اون اصلا نمی باش حرف بزن دهد از صبح زنگ زده جا روو به نظر من که کار درستی کرده جدی میم قسم حق داشته بدون جریان چی ؟ این خبر نداشته پای خبر داشت که نمییمد سراغ تو با تو حرف بزنه مستقیم زنگ زد پلیس. تو وقتی به قاسم جریان بابا تو گفتی چی گفت؟ گفت خبر نداشته چقدر من بهت گفتم این کار نکن؟ بچه شدی یا داره دروغ میگه داره میزن خوش به اون را که چی بشه مثلا؟ مثلا اگه خبر داشت چه فرقی میکرد؟ سلام. بیا بشین شامتو بکشم بیرون شام خوردم. چی؟ چی چی؟ چی خوردی؟ یه چیزی خوردم دیگه مگه مهمه؟ بله مهمه. چون دروغ میگی. چون این مدت همش داری دروغ میگی. چه دروغی دست بردار آرش. خودیتو به اون را همه را نگران کردی. چرا نمیگی مشکلت چیه؟ من مشکلی ندارم. اون پولی که از من گرفتی از شرکت برداشتی برای چی بود؟ بیده بدهی دارم. بدهی؟ چه بدهی؟ یه دوزار که نیست. چی شده؟ سرکله یکی پیدا شده رفته ادعا کرده که برنامه نوشته مگه میشه هرکه از را رسید مدعیشه؟ قبلا یه چند ماه بران کار کرده یکی دو ماه الان اومده که ازیاد کنه یه قرار دادیم بینمون نوشته شده بود که الان هر چی میگردم اصلا پیداش نمیکنم الان شنیده که کارو بارمون گرفته اومده که ازیاد کنه پول دادی اون؟ بر چین کارو کردی برای چی پول زور دادیم؟ فکر میکردم با پول راضی میشه شرش کنده میشه ولی با پولم راضی نشد رفته شکایت کرده الان من دارم میدوام که این موضوع حلش کنم رونا همین وسط نسبت به این ماجرا بدبین شده فکر میکنه بین من و این دختره بنفشه ایچ چیزی بوده عجب ماجراهی؟ چرا زودتر نگفتی؟ آخه گفتنش جز نگران کردن شما چه فایده ای داشت لاغل مگه میدونستم برای رونا توضیح میدادم که بین شما چیزی نبوده من خودم برای رونا توضیح دادم ولی رونا به این راحتی باور نمیکنه حالا شما نمیخواد نگران باشی دوباره حالت بد میشه من خودم حلش میکنم شنیدی چی گفتم مامان؟ آراش اربا خواهد که باباد همه مجره همینه که گفتی بابا من میگم یه جور داستانه نمیگم یه جور دیگه خب باید برای رونو توضیح بریم اونم حق داره نگران دیگه خب من گرفتاریم هم ایناست دیگه باید این دخترها رو از منصرف کنم رونا هم راضی نگه دارم چرا هرگی بست میکنی اصابه خود خرد خورد میکنه بنا خودم بیرم با شرف نزدن بیت با هم شام بخوریم بخوریم من شام نمیخورم بیرم بلا تو قاسم شریفی رو از کجا میشناسی؟ کی؟ قاسم شریفی نمیشنستم خود تو به اون را نزن دیدمت توی پارک تقییبت کردم ببینم با سامان قرار میذاری؟ بلکی نگو من خوب حواسم جمع بود هیچ کس من رو تقییب نمیکرد بدشم من با سامان قرار نداشتم آقا قاسم قرار داشت هم که زیر بقنش گرفتی کمکش کردی بردیش من نمازه تو بودم علکی نگو دیدم سوار ماشین آقا پشمان شدی ماشین آقا پشمان درست تو چیکار میکنه؟ تو قاسم شریفی رو از کجا میشناسی؟ چرا حالیت نیست من چی میگم شادی؟ من فقط دیدم اون پیره مرد افتاده حالش به هم خورده که خواستم برم کمکش کنم ببرمش دو چطور همین پس شمدین یه تقه چی کار می تو برای چی برداشی؟ برای چی خریدی؟ تو شب رفتی شرکت؟ اینجا کنم به زنان برم تا کی نکوی از عرشت را خیلی دوست دارم ای ای ای اونه تا دیم چیانو پول <سؤال> لدیم من نمی خام چهتی نگارونام باشه بایی میشه قبول کنیم کاری که کردیم درست خواه چیز شوی اقا او پیر منت ایچ کسیو نداره میسه میدر ایشی باری او پیرورده بیچاره داشت سکته میکر